فصل ششم اوایل دکتر معمولا تا ساعت هفت می خوابید. با پیراهن بی که تا زیر گردن دگمه خورده بود و آسین های کسیف و چرکش که تا سر آرنج بالا زده بود در آشپزخانه ظاهر می‌شد. شد شلوار کسیفش که کمر آن از بیرون در زیر جا ها بسته میشد تا سینه اش بالا می‌آمد. این احساس به تو دست میداد که همین الان است که شلوارش سر بخورد و از پایش بیفتد زیرا جسمی در کار نبود که شلوار باند بند شود. لاغرتر نشده بود اما آن حالت نظامی و پرغروری که سال اول در چهرش بود دیگر دیده نمیشد حالت خواب‌آلوده و خسته مردی را داشت که نمیداند زندگیش از این دقیقه تا دقیقه دیگر چگونه خواهد بود و کمترین علاقی هم به دانستنش ندارد. اندکی بعد از ساعت هفت قهوه بدون شیرش را می‌خورد و بعد به اتاقش برمیگشت و سر راهش با حالتی وارفته رفته شب خیری گنگ و نامفهوم بر زبان می‌آورد. چهار سال بود که در خانه ما زندگی میکرد و در ماکندو را به چشم مردی جدی و کاری می‌نگریستند. هرچند که رفتار تند و خشن و رویه بین از ما چونان فضایی گردا گردش به وجود آورده بود که احساس مردم بیشتر به ترس میمانست تا احترام تا وقتی که شرکت موز از راه رسید و کار کشیدن خطاهن شروع شد او تنها دکتر شهر بود بعد کم کم صندلی های آن اتاق کوچک خالی شد وقتی که شرکت درمانگاهی برای کارگرانش به راه انداخت مردمی که در عرض چهار سال اول اقامتش در ماکوندو به او مراجعه کرده بودند او را کنار گذاشتند. او حتما مسیرهای تازه را که طوفان برگ در پیش می گرفت به چشم دیده بود اما چیزی نمی گفتفت. در مشرف خیابان را باز میگذاشت و همه ی روز را بر صندلی چرمیش مینشست. تا اینکه روزها گذشت، بدون اینکه تا بیماری به او مراجعه کند آنگاه کلون در را انداخت و ننویی خرید و خودش را توی اتاق حبس کرد در طول این مدت مما عادت کرده بود صبحانه دکتر را که عبارت از مز و پرتقال بود برایش ببرد او اون را میخورد و پوستشان را به گوشه ای پرتاب میکرد و زن سرخ پوست روزهای شنبه موقع نظافت اتاق خواب آنها را برمیداشت اما به خاطر روشی که او در پیش گرفته بود همه گمان می که اگر یکی از همین شنبه ها دست از تمیز کردن بردارد و اتاق به یک زبال دانی تبدیل شود برای دکتر چندان تفاوتی نخواهد کرد حالا دیگر مطلقا کاری نمی کرد. تمام وقتش را توی ننو تاپ می خورد. از لایه در نیمه باز میشد او را توی تاریکی دید و چهره لاغر و بی‌حالتش، موهای جوریدهش و سرزندگی بیمارگونه چشمان زرد و بی‌انعطافش، ظاهر تردید ناپذیر مردی را به او میداد که احساس می‌کند اوضاع و احوال او را به زانو درآورده است. در تهی نخستین سال‌های اقامتش در خانه ما، آدلایدا دابی تفاوت به نظر می رسید یا نشان می داد که با من همراهی می کند و یا واقعا با تصمیم من مبنی بر اینکه که دکتر باید در خانه ما بماند موافق است اما بعد از اینکه که متبش را بست و فقط موقع صرف غذا از اتاقش بیرون می آمد و با همان خونسردی خاموش و دردناک همیشگیش پشت میز می نشست زنم دیگر طاقتش تمام شد به من گفت حمایت کردن از او دیگر خلاف شر است. مثل این است که رزق و روزی شیطان را فراهم می کنیم. و من که همیشه در حق او بی هیچ آمیزه ای از احساس تصف و شگفتی و اندوه نظر مساعد داشتم. زیرا اگر چه شاید اکنون سعی کنم که شکل آن را عوض کنم اما اندوه عظیمی آن احساس نهفته بود. پا فشاری می کردم که ما باید از او مواظبت کنیم. او است که هیچ کس را در دنیا ندارد و محتاج همدلی و تفاهم است اندکی پس از آن راه آهن به کار افتاد ما به شهری خوشبخت بدل شد پر از شهره های تازه با یک سینما و چندین مرکز تفریح و سرگرمی کار برای همه بود جز برای او و او همچنان خود را در کنج خیش حفظ کرده بود تا اینکان روز صبح ناگهان موقع صرف صبحانه سر و کلش در اتاق نارخوری پیدا شد و با حالتی بی اختیار و حتی با شیفتگی درباره چشماندازهای های باشکوه شهر سخن گفت. این حرفها را آن روز صبح من برای اولین بار شنیدم. گفت وقتی که به طوفان برگ عادت کنیم همه اینها می‌گذرد. ماهها بعد، بارها دیده بودند که او پس از گرگمیش غروب به خیابان میرود. تا آخرین لحظات روشنایی روز، دم مغازه سلمانی می‌نشست و در صحبت مردمی شرکت می‌کرد. که جلوی در سلمانی کنار میز آرایش قابل حمل و کنار چاربایی بلندی جمع می‌شدند که سلمانی توی خیابان می‌گذاشت. تا مشتریانش از خنکی هوای غروب لذت ببرند. دکترهای شرکت رازی نبودند که او از وسیله معاشش محروم شود و در سال 1907 که دیگر حتی یک بیمار هم در ماکوند نبود که اسمی از او ببرد و خود او هم از هر امید و انتظاری دست شسته بود یکی از دکترهای شرکت موز به شهرداری پیشنهاد کرد که از تمام متخصصان شهر بخواهد که مدارک تحصیلی خود را به ثبت برسانند وقتی که حکم مذکور را دوشنبه روزی در هر چهار گوشه میدان به دیوار زدند یقینا او متوجه نشد که منظورشان جزو کس دیگری نیست این من بودم که با او صحبت کردم و گفتم پذیرفتن درخواست شهرداری فرصت مناسبی است اما او آرام و بی تفاوت تنها به این پاسخ اکتفا کرد من دیگر علاش نیستم سرنگ نمیخوام دوباره خودم را در این کارها درگیر کنم هرگز نتوانستم کشف کنم که آیا مدارکش واقعا اعتبار دارد یا نه نتوانستم بفهمم که آیا او آنطور دور که ما تصور میکردیم فرانسوی است یا آیا نشان و یاد بودی از خانواده ای دارد که باید هم میداشت اما درباره حتی کلمه‌ای بر زبان نمیآورد. چند هفته بعد که سر و کله شهردار و منشیش توی خانه من پیدا شد که آمده بودند از او معرفی نامه و ورقه ثبت سبت پروانه کارش را بخواهند او مطلقاً حاضر نشد از اتاقش بیرون بیاید آن روز پس از پنج سال زندگی زیر یک سقف، ناگهان متوجه شدم که ما حتی اسمش را هم نمیداد. آدم نباید حتما هفته سالش باشد همونطور که من بودم تا بتواند به چشم خیش ببیند که از وقتی که ممه را سراپا بزک کرده و آراسته در کلیسا دیدم و پس از آن وقتی که با او در مغازه به گفتگو نشستم آن اتاق کوچک مشرف به خیابان بسته شده است. بعدها متوجه شدم که نامادریم آن را قفل کرده است و نمیگذارد کسی به چیزهایی که در آن به جا مانده دست بزند. دخت خوابی که دکتر تا خریدن ننو از آن استفاده کرده بود. میز کوچک پر از دارویی که او فقط پولی را که در طی سالهای پر مشتریش بهم زده بود از آن برداشته و هم راه برده بود. یه گویا پول نسبتا زیادی هم بود سیرا او توی آن خانه خرجی نداشت و برای اینکه ممه با آن بتواند مغازهش را راه بیاندازد کافی بود. و گذشته از اینها. در وسط یک کپ آشقال و روزنامه های کهنه که به زبان مادری او نوشته شده بود میز دست و مقداری خردریز مصرف شخصی چون این به نظر می رسید که همه آنها به چیزی آلودند که نامادری آن را کاملا شیطانی می دانست. باید متوجه می شدم که در اتاق را ماه اکتبر یا نوامبر بستند، سه سال بود که ممه و دکتر خانه را ترک کرده بودند. زیرا اوایل سال بعدش با اقامت من در آن اتاق رویاهایم درباره مرتین شروع شد. میخواستم پس از ازدواج در آن اتاق زندگی کنم. دور برش پرسه میزدم هنگام انگام صحبت با نامادریم حتی پیشنهاد کردم که حالا دیگر وقت آن است که قفل را باز کند، و این قرنطینه نگه نفوز ناپذیر را که بر خودمانی ترین و خصوصی ترین بخشان خانه تحمیل شده کنار بگذارد اما تا وقتی که دست به کار دوختن لباس عروسی نشدیم هیچکس کس دکتر و تا در, در آن اتاق کوچک که هنوز شبیه چیزی بود که به او تعلق داشت سریحاً با من حرفی نزد این اتاق بخشی از شخصیت او بود و مادام که کسی او را به یاد داشت، هنوز در خانه ما زندگی می کرد، نمی را از خانه ما جدا کرد. می خواستم پیش از پایان سال ازدواج کنم. درست نمی دانم آیا شرایطی که زندگی من در دوره کودکی و ایام بلوغ در لوایان رشد کرده بود واقعا به من تصویری مبهم از پیش آمدها و چیزهای آن زمان را می داد؟ اما قدر مسلم این بود که در طول ماهایی که کار تدارک ازدواجم پیش میرفت هنوز رمز و راز بسیاری از چیزها را نمیدانستم. یک سال پیش از آن که با مارتین ازدواج کنم، او را از ورای قلمرو مبهم خیال به خاطر می آوردم شاید به همین دلیل بود که میخواستم نزدیکم باشد، توی آن اتاق کوچک تا بتوانم خودم را قانع کنم که موضوع مردی واقعی در میان است. نه نامزدی که من در رویا ملاقاتش کردم اما توانان را در خودم نمی دیدم که در باره با نامادریم حرف بزنم طبعا باید می گفتم می خواهم را باز کنم می خواهم میز را نزدیک پنجره بگذارم و تخت خواب را کنار دیوار می خواهم گلدانی از میخک خک روی قفسه و یک شاخ سبر بالای سردر بگذارم اما ترس من و بی تصمیمی محزم با خیال و تصور محالود نامزدم بیوند خورده بود او را همچون پیکری مبهم و دست نیافتنی میدیدم که به نظر می رسید تنها اناسور ملموسش سیبیل برراغ و سرندکی به چپ متمایل و نیم چهار دگمه ی همیشه بود در اواخر ژویه به خانه ما آمده بود روز را با ما گذراند و, و با پدرم توی دفتر به صحبت نشست و صحبتشان درباره یک کسب و کار مرموزی دور میزد که هرگز نتوانستم از آن سر در بیاورم بعد از ظهر من و مارتین قرار بود با نامادریم به کشت زار برویم اما موقع بازگشت که در روشنایی ملایم و مطبوع غروب آفتاب نگاهش می‌کردم وقتی به من نزدیک تر بود و دوش به دوش من راه میرفت حتی انتضاعید و غیر واقعی تر شده بود می دانستم که هرگز قادر نخواهم بود مارتین را چنان آدمی تصور کنم یا در او آن و استواری را بیابم که مرا وقتی میگویم میخواهم اتاق را برای مارتین آماده کنم جرأت و قوت قلب ببخشد یک سال پیش از ازدواج حتی فکر ازدواج با مارتین به نظرم عجیب و غریب می آمد او را در ماه فوریه، انگام ماتم شبانه بچه پالوکو مادو ملاقات کرده بودم چند نفر از ما دخترها آواز می خوندیم و دست می زدیم و سعی می کردیم از هر لحظه تنها تفریح مجازمان استفاده کنیم یک سینما در ماکوندو را انداخته بودند و یک دستگاه گرامافون عمومی و جاهای دیگری برای سرگرمی دایر شده بود اما پدر و نامادری‌ام با چنین تفریاتی برای دخترهایی به سن و سال من مخالف بودند میگفتند این سرگرمی ها ناشی از طوفان برگ است در ماه فوریه هوا گرم بود من و نامادریم توی ایوان نشسته بودیم و در همان حال که پدرم در خواب نیم روز بود پارچه سفیدی را پستوزی می کردیم کار دوختن را تا وقتی ادامه دادیم که بدرم همچنان که کفش‌های چوبیش را به زحمت روی زمین می‌کشید، رفت تا سرش را توی لگن شست و خیس کند اما در ماه فوریه شبها خونک و عمیق بود و در تمام شهر صدای زنها که در ماتم شبانه کودکان آواز می مترنم بود جبی که ما به ماتم شبانه بچه پالوکوا مادو رفتیم صدای ممه اوروسکو شاید بلندتر از همیشه بود. اولاغر و بیملاحت و مثل دست جارو خشک و شکرق و بود. اما میدانست چه تحریری به صدایش بدهد که خوشتر از دیگران بخواند. و در نخستین وقفه را گارسیا گفت بیرون یک نفر غریبه نشسته. فکر می کنم همه ی ما دست از آواز خواندن کشیدی مگر زم دیوس اروسکا. خنوبر اگر گفت فکرش را بکنید نیمتنه پوشیده تمام شب حرف زده و دیگران بیان که جیک بزنند گوش دادند. نیمتنه ی چهار دگمه پوشیده و وقتی که پاهایش را روی هم می جوراب ساق کوتاه و بند جوراب و کفش های بند دارش پیداست. ممه اروسکا همچنان آواز می خاند که ما دست زدیم و گفتیم بیایید باهاش ازدواج کنیم. پس از آن وقتی در خانه فکرش را کردم، نمی‌توانستم هیچ نسبتی میان آن حرف‌ها و واقعیت پیدا کنم. آن حرف‌ها طوری مانده بود که انگار از دهان گروهی از زنهای خیالی که دست میزدند و در خانه‌ای که کودکی خیالی مرده بود، آواز می‌خواندند، در آمده است. زن‌های دیگر نزدیک ما سیگار میکشیدند آنها جدی و حشیار بودند و گردنهای درازشان را که شبیه گردن لاشخور بود به سوی ما کچ می اندکی هندکی عقبتر در خونکای پله درگاه زن دیگری که سرش را با پارچی پهن بسته بود منتظر بود قهوه جوش بیاید ناگهان صدای مردی به صدای ما پیوست اول صدایش بریده بریده و بی هدف بود اما بعد اوج گرفت و زنگدار شد. انگار در کلیسا می‌خوند. را به پهلویم سقلم زد. بعد سرم را بلند کردم و او را برای اولین بار دیدم. جوان و تر و تمیز بود و با یقه آهاری و نیمتنی که هر چهار دکمه‌اش بسته بود. او نیز به من مینگریست. خبر بازگشتش را در ماه سپتامبر شنیدم و فکر کردم که برای او هیچ جا تر از آن اتاق در بسته نخواهد بود اما هنوز چاره‌ای ناندیشیده بودم به خودم گفتم مارتین مارتین مارتین و نامش اوج گرفت رها شد و فرود آمد و در هم شکست و تمامی معنایش را برایم از دست داد وقتی از مراسم ماتم شبانه بیرون آمدیم، پنجانی خالی جلوه من گذاشت و گفت، برایت فال قهوه گرفتم. داشتم با دختران دیگر به سمت در میرفتم که صدای عمیق و قاطع و ملایم او را شنیدم. هفت ستاره را به شمار تا مرا در رویایت ببینی. وقتی از در گذشتیم، پالوکو امادو را در تابوت کوچکش دیدیم با چهره پودر زده و گل سرخی در دهان، که چشمانش را با خلال دندان باز نگاه داشته بودند فوریه برای ما تونبادهای گرم مرگ را و نفس یاسمنها و بنفشه ها را که از گرمای سیال اتاق برشته می شدند به ارمغان می آورد اما آن سکوت انسانی مرده صدای دیگری بر می خواست که مداوم و متفاوت بود یادت باشد باقت هفت صداره ماه جویه بود که به خانه ما آمد داشت به گلدانهای کوزهی کنار نرده تکیه داد می گفت یادت باشد من هرگز توی چشمایی تو نگاه نکردم این راز مردی است که کم کم ترس از عاشق شدن را احساس می کند. راست می گفت نمی توانستم چشمانش را به خاطر بسپارم احتمالا در ژوئیه نمیتوانستم بگویم چشمان مردی که می‌خواستم در ماه دسامبر با او ازدواج کنم چه رنگی بودند. با این همه، شش ماه زودتر فوریه در هنگام ظهر تنها به شکل سکوتی عمیق جلوهگر بود. یک جفت کرم کانگوروکا نرماده که و به هم پیچیده بودند. زنه‌ی دای روز سه‌شنبه شاخه‌ای بادرنگ بویه میخواست و او که تبسم کنان به نرده تکیه داده بود و دگمه های نیم تنش را به شیوه ی همیشگی انداخته بود گفت می کاری بکنم که تمام دقایق روز را به من فکر کنی تصویر تو را پشت در می گذارم و دوتا سوزن توی چشمانت فرو می کنم. و خنوه را گرسیا که از خنده قش کرده بود گفت این هم از آن مردان است که از میان سرخ پوستان روی دختر به تور می زند. با رسیدن اواخر ماه مارس دیگر مارتین به خانه ما رفت و آمد می کرد و های طولانی را با پدرم در دفتر کارش می گذرند می پدرم را سر موضوع مهمی متقاعد کند که من هرگز از راز و رمزان سردر نیاوردم اکنون یازده سال از ازدواج من می گذرد نه سال از لحظه ای که او را در حال خداحافظی از پنجره قطار تماشا می کردم که از من میخواست قول بدم تا وقتی که دوباره پیش ما برمی گردد از بچه خوب مواظبت کنم. این نه سال بیان که کسی خبری از او بشنود گذشت و پدرم که او را در تدار که این سفر بی پایان یاری کرده بود هرگز درباره بازگشت او کلمهی بر زبان نیاورد. اما حتی در آن دو سالی که ازدواج ما دوام داشت مارتین از شب مراسم ماتم شبانه بچه‌ی پالوکو مادو یا آن یک شنبه ی ماه مارس که با خنوورا گارسیا از کلیسا به خانه برمیگشتیم و برای دومین بار او را دیدم ملموستر نبود. تک و تنها میان دلنگه‌ی در هتل ایستاده و دستهایش توی های بغلی نیم‌تنه‌ی چار مش بود گفت: حالا تا آخر عمرت به من فکر کنی. برای اینکه سوزنها از اکثر افتاده این حرف خود را با چنان لحن نرم و پرای جانی ادا کرد که به نظر واقعی میآمد. اما حتی این واقعیت قریب و متفاوت بود خنوبره اصرار داشت این از مزخرفات ابلهانه گواخی روی هاست سه ماه بعد خنوبره با رئیس یکی از های دست نشانده فرار کرد اما با این همه او در آن یک شنبه بسیار دقیق و جدی مینمود. مارتین درآمد آمد که خیلی دلپذیر است که بدانم در ما دو کسی به فکر من خواهد بود و خنوی را گارسیا با غیافهی که خشم و تغییرش را نشان می داد به او خیره شد و گفت ای شبه تو پا به پای نیمتنی چار دکمت می پوسی از بین می روی.